فصل دوازده ایسا به سخن خود ادامه داده و در قالب مثل به ایشان گفت، مردی تاکستانی احداث کرد و دور آن دیواری کشید، در داخل آن حوششی برای گرفتن آب انگور کند و یک برجی هم برای آن ساخت، بعد آن را به باغبانان سپرد و خود به سفر رفت. در موسم انگور غلامی را پیش باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاکستان بگیرد. اما آنها آن قلام را گرفته کتک سدن و دست خالی باز گردانیدن. صاحب تاکستان قلام دیگری نزد ایشان فرستاد. او را هم سنگسار کردند و سرش را شکستند و با بی احترامی برگردانیدن. باز قلام دیگری فرستاد او را هم کشتن. بسیاری از کسان دیگر را نیز همینطور، بعضی را زدن و بعضی را کشتن. صاحب باغ فقط یک نفر دیگر داشت که بفرستد و آن هم پسر عزیز خودش بود. سرانجام او را فرستاد و پیش خود گفت، آنها احترام پسرم را نگاه خواهند داشت. اما باغبانان به یکدیگر گفتند این وارس است، بیایید او را بکشیم تا ملک او مال خودمان بشود. پس پسر را گرفتن و او را کشتن و از تاکستان بیرون انداختن. صاحب تاکستان چه خواهد کرد؟ او میآید این باغبانان را میکشد و تاکستان را به دیگران واگذار می کند. مگر در کلام خدا نخوانده اید، آن سنگی که معماران رد کردن، به صورت سنگ اصلی بنا در آمده است این کار خداوند است و به چشم ما عجیب می نماید. رهبران یهود در صدد برآمدن عیسی را دستگیر کنند چون فهمیدن روی سخن او با آنها بود اما از مردم می‌ترسیدند پس او را ترک کردند و رفتند عده‌ای از فریسیان و طرفداران هیرودیس فرستاده شدند تا عیسی را با سوالات خیش به دام بیاندازن آنها نزد او آمده گفتند ای استاد میدانیم که تو شخص درستی هستی و از کسی طرفداری نمی کنی چون به ظاهر اشخاص نگاه نمی کنی بلکه با راستی راه خدا را تعلیم می دهی. آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است یا خیر آیا باید مالیات بدهیم یا نه؟ ایسا به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود، چرا مرا امتحان می کنید؟ یک سکه نقره بیاورید تا ببینم. آنها برای آوردن، او به ایشان فرمود، نقش و عنوان چه کسی روی آن است؟ جواب دادند: نقش و عنوان قیصر. پس عیسی فرمود، بسیار خوب، آنچرا که مال قیصر است به قیصر و آنچرا که مال خدا است به خدا بدهید. بانان با از سخنان او تعجب کردند بعد صدوقیان پیش او آمدند این فرقه معتقد بودند که پس از مرگ رستاخیزی وجود ندارد آنها از عیسی پرسیدند ای استاد موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون اولاد باشد برادرش موظف است آن زن را بگیرد تا برای او فرزندانی بیاورد هفت برادر بودن، اولی زن گرفت و بدون اولاد مرد، و بعد دومی آن زن را گرفت و او هم بی اولاد مرد، همینطور سومی. تا بالاخره هر هفت نفر مردند و هیچ اولادی به جان نگذاشتن، بعد از همه آن زن هم مرد. در روز رستاخیز وقتی آنها دوباره زنده میشوند او زن کدام یک از آنها خواهد بود چون هر هفت نفر با او ازدواج کردند عیسی به ایشان فرمود آیا گمراهی شما به این علت نیست که نه از کتاب مقدس خبر دارید و نه از قدرت خدا وقتی انسان از عالم مردگان قیام می کند دیگر نه زن میگیرد و نه شوهر می کند بلکه مانند فرشتگان آسمانی است و اما درباره قیامت مردگان مگر تا به حال در کتاب موسا در داستان بوته سوزان نخوانده ای که خدا چطور با او صحبت کرد و فرمود من خدای ابراهیم و خدای اسحق و خدای یعقوب هستم خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است. شما سخت گمراه هستید. یکی از ملایان یهود که بحث آنها را شنید و پی برد که ایسا جواب عالی به آنها داده است جلو آمد و پرسید. مهمترین حکم شریعت کدام است؟ ایسا جواب داد اول این است. ای اسرائیل بشنو. خداوند خدای ما خداوند یکتا است و خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و تمام قدرت خود دوست بدار. و دوم این است، همسایت را مانند خود محبت نما. هیچ فرمانی بزرگتر از این دو وجود ندارد. آن شخص به او گفت، ای استاد، درست است، حقیقت را فرمودی؟ خدا یکی است و به جز او خدای نیست و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام قدرت و دوست داشتن همسای مثل خود از همه هدایای سوختنی و قربانی ها است وقتی ایسا دید که جوابی عاقلانه داده است به او فرمود تو از پادشای خدا دور نیستی بعد از آن دیگر کسی جرأت نمیکرد از ایسا سوالی بکند. ایسا ضمن تعلیم خود در معبد بزرگ چنین گفت: ملایان یهود چطور میتوانند بگویند که مسیح پسر داوود است؟ در حالی که خود داوود با الهام روح القدس گفت: خداوند به خداوند من گفت: در دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم. پس وقتی خود داوود او را خداوند میخواند، چطور او میتواند پسر داوود باشد جمعیت کثیری با علاقه به سخنان او گوش میدادند عیسی در ضمن تعالیم خود با آنها فرمود از ملایان که دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقه شدیدی به سلامهای احترامآمیز دیگران در بازارها دارند برحذر باشید آنها بهترین جاها را در کنیسه ها و صدر مجالس را در مهمانی ها اشغال می کنند. مال بیوه زنان را می و محض خودنمایی نماز را طول می دهند. کیفر آنها سختتر خواهد بود. عیسی در برابر صندوق بیت المال معبد نشسته بود و میدید که چگونه اشخاص به آن صندوق پول می ریختند. بسیاری از دولتمندان پولهای زیادی دادند. زن فقیری هم آمد و دو سکه که تقریبا دو ریال میشد در صندوق انداخت. عیسی شاگردان خود را پیش خود خواند و فرمود: یقین بدانید که این زن فقیر بیش از همه کسانی که در صندوق پول ریختن پول داده است. چون آنها از آنچه که برای آن مصرفی نداشتن دادند اما او با وجود تنگ دستی هرچه داشت یعنی تمام معاش خود را داد